ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداً للأرض مدا أنت فك عبرت عن أبنية المجد أقواداً جدا قط انت یا ملی مشعبن هنی بر رو عشته کم حقت بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام رسول الله صلی الله علیه و سلم. برادرای عزیز مسلمانای مخترم. درسیم ما درباریه. اسلام شناسی معاصر در شناخت کامل دین است ما سعی و تلاش میکنم که بعد از ان الله یک سلسله از درس های اسلام شناسی را خدمتتان تقدیم بکنم که دو درس فرق اولویت هاست شناخت حلال و حرام است بعضی از فقه واقعی میگن اینی مسائل است که من این خدمتان خدمتتان در درس ها در روز آماده میکنم کنم ان الله خب موضوع اسلام شناسی کامل یا شناخت کامل دین از کجا سرچشمه میگیره ما و شما میبینیم که خداوند مطال جل در قرآن عظیم الشان برای ما ها خطاب میکنه بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم کافه ولا تطبعوا خطوات الشیطان صدق الله العظیم خداوند مطال میگه که یا ایو هلذین آمنو این چه خطاب بر مؤمنا هست شما شما خب می‌بینیم که در بسیاری مسائل خطاب جهانی می یا ایه ناس بر کل مردم خطاب میشه و بعد از اینکه ما شما ادعای ایمان کردیم و تلیمه رو خواندیم باز اینجا مخاطب باز مسلمان ها قرار میگیره بر شمره میگی یا ایو هلذین آمن و ای کسانی که شما ادای ایمان میکنین میگین ما مسلمان هستیم متوجه از این نقطه باشین این بسیار مهم است که خلوف سلم کافتن شما در اسلام مکمل داخل شدید علما بعضی از علما این نحوه که خواستن قرآن عزیمشان با موس... اسلوب ترکیبی نحوی تفسیر و تحلیل بکنن در کلمه کافه گفتن خود کل... کلمه کافه و معنای کامل است خب اینه گفتن کلمه کافه حال است این ای حال از واو است در ادخلو یعنی شما مسلمان ها اینجا وا وا جماعت میگن است که شما مسلمان ها را در نظر میگیره یعنی شما مسلمان ها دا اسلام داخل شوید و بعضی از علمای دیگه میگن که نه این حال از کلمه سلم از خود کلمه اسلام بنار اینجا ما میتانیم دو تفسیر بکنیم دو تفسیر چه قسم بکنیم که ما در اسلام خود ما ادخلو یعنی هر شخصی که تو مسلمان هستی داخل شده در اسلام تو با تمام اعضای بدنت چشمت، گوشت، عقلت، فکرت، اندیشی، دست و پای تمامی اعضای بدنت باید مسلمان بسرد یعنی ما کسایی داریم که مثلا مسلمان هست قلبن ولی چشمش مسلمان نیست چرا؟ چشمش مخالف حکم در حرکت است یا آیت قرآن برای شمایه که نه هم مسلمان بسازی اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم شدن پس چشمایت هم باید به حکم خداوند تسلیم باشه دست هم باید مسلمان باشه در کاری که حکم خدا دوشده که نکو باید دست از اونطور شده باید هم باید به طرف حرکت کنه وقتی که اصاب میکنی روزانه ما چند قدم به طرف شر رفته و چند قدم به طرف خیر رفته هر خطوی که من میگذارم هر قدمی که من می‌گذارم، چند قدم ازی در راه خدا بودن و چند قدمی دیگه ازی به خاطر نفس امارا به بودن چند قدم ازی به خاطر خوشی یک انسان بودن و چند قدم ازی به خاطر خوشی خداوند متعال جل جلوه جل بودن بنامه قدم های ما هم باید قدم های اسلامی باشه. خب ای که اگر تفسیر دیگه شد که کلمه کافه یعنی سلم باید ما مکملا در اسلام داخل شویم اینجا باید بخشهای مکمل اسلام باید مراحت بکنیم پس بخش های مکمل اسلام چیست؟ اسلام بخش فردی داره. من من یک فرد چی مسئولیت ها دارم؟ اسلام بخش, بخش اجتماعی داره. من من یک انسان در جامعه چی مسئولیت دارم؟ بخش اقتصادی داره که من در مقابل اقتصاد اسلامی چی مکلفیت دارم؟ آهی من میتانم؟ من از یک کسی به من سوسیال دموکرات هستم؟ وقفه مسلمان حسن گفتم خب من یه سوال از پیشوت بکنم اجازه میدی که سوال بود. گفتم وقتی که یک نفر میگه من کمونیست هستم برو از کمونیست حقیقی پرسون که بگو برادر تو که کمونیست هستی آیا ممکن است که من مثلا عقیده عقیده مارکس باشه؟ فکر اندیشم مارکسی باشه و ما به مارکسیزم ایمان داشته باشم لکن بگویم، من میخوام که اقتصاد اسلامی رو تدقیق بکنم اون مارکسیست بر تو میگه نه خیر فکر رو ما کتا تاشیه نمیشه اتو شده نمیتونه که انسان خودش بگه من مارکسیست هستم کمونیست هستم لکن اقتصادش از اسلام میگیرم برایم دی یا مکمل مارکسیست شو یا اش مارکسیست نیست اگه بخاطر تو میتونم گفتم تو خودت نهاله خودت با با تناقض گپ میدی که من مسلمان هستم لکن باز اقتصادش از کجا میگیرم از اقتصاد مارکسیستی میگیریم باز شده نمیتونه چرا؟ دین کامل است فکر کامل است اندیشه کامل است بنا اگر ما یک قسمتی از دین بگیریم قسمت دیگه اش از دیگه جای اجویز کریم باید پیواند میخورن و فکر و اندیشه پیوانده نمیپذیره تجزیه نمیشه الاسلام اما خذ کلوه او یترکوه کلوه یا مکمل مسلمان شو خداوند بگه یا ایوها الازین اما رو خلوف السلم یا در اسلام مکمل داخل شوید یا مکمل اسلامه ترک بکنین اما این قسم تداخل بین اعتقادات و در عقیده و در دیل مقدس اسلام و در سایر عقاید و افکار نمی پسیدن. اینا رو به خاطر وقتی که انسان گفت که ادخلوا فی السلم یعنی در اسلام بعضی از ابو ابوهریره رضی الله تعالی وقتی که روایت میکنه که عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم پیغمبر ما سمعه چی گفتم عزت اول سر مایک رسول الله صلی الله علیه و سلام گفت که ایمان و بدعون و 70 شعبه ایمان 70 چند بخش داره یعنی پیغمبر صاحب ما معرفی میکنه دین یعنی چی ایمان بدون بده اون مثل اونناشاوتن ایمان هفتاده چند بچ فضلال وها قالله اللهه الله الله بهترین شاخش و اولترین شاخ ایمان چست که تو داخل ایمان میشی گفتن لا اللهه الله الله هست و ناهااعمات ط عم تاریق و آخری یا قرترین شاخی ایمان چست دور کردن یک چیز مض برف از روی را رو پاک میکنین یک چیز خ خوشاک داره افتاده اوور پاک میکنین سرکه جور میکنی پاکش میکنی یک چیزی مزر زوای مردم دور میکنه امااد تض عنتطری وال حییا اوشاابت و, و شعبت من ایمان و حییم یک بخشی از ایمان است به اینجا عیت قرآن که پس شما در هفتاد و دو بخش ایمان اینجا بدان بدون بدون ما میگه بین سه تا نو یعنی هفتاد و چند بخش است و علمان دیگه میگن که وقتی کلمه افتاب در, در اسلام استعمال میشن ومان بسیار زیاد یعنی ایمان بخشهایی بسیار زیاد داره. خودا در یک بخش و دو بخش مسروف نگو که والا من اینی بخش دین دی نگرفتم من والله مسلمان شدم آیه خدا میگه نخیر بدخلوا في السلم کافتا تو باید اگر میخوای که مسلمان مکمل شوی در بخش فردی ایمان بالای من ایمان چی حکم میکنن و با بخش اجتماعی ایمان در جامعه وقتی که من زندگی میکنم اسلام است که رابطه تو را با برادرت با پدرت با مادرت با فامیلت با همسایت، با استادت با همکارت با مردم با تمام کسایی که سویقدر جامعه است مثلا نماز جمعه نماز ببین با شما در نماز جماعت در ازید خود خود میرین در مسجد ما 20 نفر نماز می خونیم روزانه ما رو با اینی دو که ما زندگی میکنیم ارتباط می وقتی وقت که روز جمعه میشه باز نمیریم در مسجد کالان قری میریم ایج با کل مردمی که دیم دای, میخ... دای زندگی میکنن افراد شما شناخت پیدا بگه او صاحب شما رو بعد نماز جمعه دید و شما در نماز جمعه ملاقات کردم باز اینجا ال قره کالان سوخته بره بلاخره باز وقتی نمازیت میشن از نگاه حکم شرعی باید ما ایدگاه داشته باشیم که کل مردمی یک شد در ایدگاه جمع شدند تا در ایدگاه باید دایری اجتماعی اسلام کلانتر شد و سطح مولایت و سطح کشور شد و وسط مملکت شد باز ما هشت داریم هر چی است فلسفه حج وقتی که ما وجوبش با بخاید ارتباط مسلمانان جهان است که تو کل دنیا را مسلمان‌ها به اروپا و آمریکا و آسیا و آفریقا و کل زینا با هم یک جای میشن و هم شناسی و با اینج میشینن حل مشکلات میکنن حل مشکل اقتصادی میکنن اوخ ما تو حج هم به مشکل سیستم اصلیش که اسلام از ازو تقاضا داره یا نماز جماعت مثلا بسیاری که جماعت درست نمیفهمن فقط نماز خودمه خان وقتی که سلام داد پس میره در خانه خدا خیر اسلام نماز جماعت بر از این است نماز جماعت برای از است که از صحت یکی دیگر، از مشکلات یکی دیگر، از غم و درد یکی دیگر از ای باید با خبر شدیم این است نظام اجتماعی اسلام باید ما در نظام،, در نظام اقتصادی اسلام باید ما اقتصاد اسلامی در نظر بگیریم امایی که میگه مثلا که یک نفر که پیغمبر صلی علیه که او کسی که مثلا شو میکنه و سی خواب میکنه و همساییش گرسنه است. اینجا واسه استیل مقدس اسلام بیه که اینجا بایغمه اسلام که ایمان از قبول نمیشه مسلمان نیست کی مسلمان نیست من با تشبانه و جارو چجایه خودش شکم سیر خوب کرد. امسای شو وقتی که از اولامو پرسان کردند که خب خیلی امسای است میگه امسای همسایه تو چهل خانه بدست راست، چهل خانه بدست چپ، چهل خاره پیشروید، چهل خانه پشت سرت. و اگر در یک تعمیر زندگی میکنید که دستات منزل است، چهل منزل بالا و چهل منزل پایین یکی کیست امسای تو ساد میشه. باید از حالت کل از اینا با خبر باشی. در نظام سیاسی اسلام وقتی که میبینیم اسلام باید یه یعنی انسان مسلمان باید وقتی که مسلم سلمان باید کوشش بکنه که در سیاست اسلام باید اونجا طرفدار ازی باشه که حکم خدا باشه افتاد فیصد شخص افتاد فیصد دیری مقدس اسلام احکام اجتماعی است خب وقتی که نظام غیر اسلامی بود با زکات از بند میره باز حدود از بین میره با روابط اجتماعی اسلام از بین میره، اسلام باز یک چیز بسیار کوچکی میشه که میگه برو در مسجد ترتی، مسلمان هستی؟ از مسجد که برامدی؟ از در ورودی مسجد برامدی باز مسلمان نیستی. در سرک مسلمان نیستی، در پرلبان مسلمان نیستی، باز نظام غیر اسلامی. تو این قسم میگه اما خدا خوب با امرای ما همیشه هست. وقتی که انسان مسلمان باید در مکتب هم مسلمان باشه. معلمی که بر شاکت خود درس میده، به اساس فکر ایمانی خود مسئولیت خود در مقابل ما اسلو و شاگردو خود در نظر داشته باشه ایست که مثلا بازها میشیم میشکسیم حتی موبایل ما باید اسلامی باشه که وقتی که در داخل میشی باید گلوش کنیم دیگر اینجا خواهدیم که درسی دین بخوریم حتی ما کار دارم بازیگارا تشویش ندیم اینه باید کلش ما اسلامی بسازیم خب, خب این حال وقتی که ما اسلام افامیدیم این جماعیه که اسلام کامل چه قسم بشناسیم؟ وقتی که ما یک انسان کامل بشناسیم انسان کامل کلام انسان است انسان است که روح داشته باشه جسد داشته باشه و عقل داشته باشه روح اگر یک نفر روح نداشت مجالده که برامده از وظیفه موتر زده انجینئر مردم باز نمیگه انجینئر سه خلاص کجاست؟ مایته کجاست؟ جسد کجا بردن؟ این نام زندگی که نهادن را جای حیات نام تو مایت نهادن نیست. وقتی که روحش رفت باز نمره که کجاست رئیس؟ میگه مرده کجاست؟ جسد کجاست؟ از خاطر انسان وقتی کامل میشه که روح داشته باشه. اگر روح نداش مرده است. انسان وقتی کامل میشه که جسد داشته باشه. اگر یک نفر خدای خواستن نابینا شد بگه برو داره سی نابینا درس بخوان اگر یک پایت نبود باز مربوط تو وزارت ملولین شو ادا ملولین میشی اینها به این شکل کامل گفتن نمیشه ولی این فلانی از اسکری محافظ چرا محافظ میگه چرا پایی نداره مشکل داره و سوم قسمش انسان کامل است که عقل داشته باشه یعنی عقل است که اگر عقل انسان نبود باز اونه که این انسان است انسان ناقص چی میگن اونه؟ دیوانه غلطش نگی خرید اون دیوان است اصحابش خراب است. اسلام های نگه پس پیغمبر سلام مثل که حدیث شریف خونده شد پیغمبر سلامیه که دین قدس اسلام از سی بخش اساسیش گرفت شده که روح دین ایمان است ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخره والقدر خيره وشره من الله تعالی ایمان داشتن به اساسات ای اعتقادی این بخش روحی یا تیوریه دین است اسلام عمل است بخش پرکتیک است با زبان کلمه بخونیم قلب تو رو تصدیق بکنه نماز بخونی دوزه بگیری هج بری اگه تا وای و بقیه احکام عملی اسلام و احسان چی احسان مثل که عقل در بین روح و جسد انسان کار میکنه احسان ارتباط دادن است بین ایمان و بین اسلام یعنی وقتی که نماز میخانی جسدت استاد شدی الله اکبر گفتی باید روحت هم آزر باشی که بگی در مقابل خدای الزواجال قرار دارم. احسان چیست انت در ربک که آنکه تراه، اون تو ای با خدا، خداوند تو کنیم. مسئله که خدا رو میبینی، فان لم کن تراه، اگر تو مشکل داری، این مشکل توست. توست که خدا رو نبینی، فانه او تو رو را میبینه. آن موقعی که خدا رو دیدن نمیتونیم، مشکل موس که دیدن نمیتونیم. عفلتوم. سقرات و عرستو تا امروز را میگم ها فیلسوف بودن وقتی که لوی پاستور آمد در قرن بیست میکروب را کشف کرد میکروسکوپ وقتی که ساخته شد میکروب را کشف کرد باز ای فامید گفت که نه یک تعداد مخلوقات دیگه است که شاید تعدادش در هر انسان شاید در وجود تو به میلیون ها ویروس باشد میلیون ها میکروب باشد زیر ناخورای افلاتون کلش چرک زده بود از عالم بالا گپ میزد از عالم مثل گفت میزد میکروبه مشناخت تو افلاتون؟ مشناخت بس مشکل در میکروب بود یا مشکل در افلاتون <تصفيق> افلاتون اجول خودش توانایی نداشت ولی در قرنبیس لویپاستر آمد و میکروبه کشف کرد پس بس اینال بسیاری مخلوقات است که فیلسوف ها را شناختن هم ایتانستن فیلسوف وقتی که از, از افلاتون گپ بزنی و از تو قرار گفت بسیار. موجودات کوچکی که موجود بدن نمیفامیدن پس مشکل داشتی ای اینسان فیلسوف امروز یک طفل خورد موتو هم میکروبا میشنست یا نمیشنست؟ بنار امروز یک طفل خورد موتو از افلاطون که زیاد میفهمه یا کم میفهمه زیاد نفامید اگر همینگل ریل بیاری افلاتون از قبر بخیزانی که از دور ریل بیاید میگوید که دیو آمد اما یک طفل خورد موتو قرار است صاد میشه میگه با صبر کن ماده بالا میشی ما را میبره چون افلاطون هرگز نمیشناخت مو به یادت نداش ها دستر اینترنت اگه افلاطون هم از قلب دست قبر بخیزونی اینترنت کار کرده نمیتونه ولی امروز یک تفلکه خوردم اوتگو وقتی بشوری شو وقت بعد اینترنت چالو راه میکنه کارام میکنه بنا اینجه مشکل مشکلی خب فئن لم تکون تراه اگر تو خودت رو دیدی فإنه یراک پس او تر میبل من انسان مسلمان در 24 ساعت زندگی خود مراقب حقیقی خود ذات خدای عزم. عز قرار میده اگر ما ایمان و اسلام احسان و احسان حقیقتا سر خود تدبیر بکنیم باز اینجا چی میشه؟ باز اینجا ضرورت نیست که ما شما باید سانانوال داشته باشیم باید پلیس داشته باشیم باید محکمه داشته باشیم شاید اگه داشته باشیم بسیار یک محکمه بر کل کشور چرا؟ بخاطر خاطر از اینکه معیار جنایت بسیار کم میشه وقتی که انسان فهمید که خدا ما رو مراقبت میکنه اگر من یک روپیه تر میخورم پس اینجا در حقیقت خدا شاهد است و حاضر و ناظر است و ما را مراقبت میکنه و ما را جزا میده پس و از خدا از ج... جزای خداوندی که انسان بترسه باز معیار جرم جنایت کم میشه چرا جنایت زیاد شده میره به مون اندازه که انسان فاصله از خدا بگیره فاصله از دین بگیره فاصله از ایمان بگیره به مون اندازه میار جنایت زیاد میشه و هیچ وقت امیدوار از این نباشیم در کشوری که بیدی نیست، اونجا باییم جنایت نباشه اونجا هر روز جنایت زیاد شده میره حتی جنایت ها مشروعیت فیدا میکنن امروز مثلا در قشتی کچ از نگاه اسلامی کلی یک نفر رو دندان دندان‌های یک نفر رو یک نفر خفک کردن یک نفر کالش شده دیوال زدند جنایت است لکن در جایی که اسلام وجود نداره قانون خدا وجود نداره اونجا کلی نفر ده دیوال دیوال میزنه و 10000 نفر برای چک, چک میکنن و اینو بسیار افتخار را میدونه بعضی جنایت در جایی که ایمان نیست مشروعیت پیدا میکنه قانونی میشه عمررده کی که مثلا در قشاقش کشمیر یک نفر رو دیوال دیوال, دیوال کلیش میزنه قانونی میزنه غیر قانونی میزنه چون قانون قانون خداست قانون چه است قانون جنگر است وقتی قانون خدا نبود انسان با چی تبدیل می کنه بدتر تبدیل میشه کنه اتو درنده ها میگه به من توهین نکن یک کاری که تو انسان میکنی من نمی کنم ها یک کاری که تو میکنی من نمی خب دین دینی قدس اسلام وقتی که من باز کامل شنوختی باز این جمع که خب دین اسلام کدام رابطه ها را تزمین میکنه پس سه رابطه باید انسان داشته باشه رابطه انسان با خود انسان اول باید رابطه با خودت درست شه دین رابطه خودت با خودت محکم میکنه رابطه تا با خدایت محکم میکنه و رابطیت با مردم با جامعه خب رابطه انسان با خداوند احتراما با خداوند متعال جل جلاله جل. اول از رابطه انسان با خداوند متعال جل جلو. انسان وقتی که رابطه خدا میخواهی با خداوند محکم بکنن چه قسم بیتونی رابطه با خداوند محکم بکنی؟ در شناخت خدا هست که باید اول ما خداوند بشناسیم چه قسم خدا را بشناسیم؟ بسیاری کسا هستند که خدا را مشابه با مخلوق میسازن مثلا ببینید در سوره اخلاص خداوند متال جلجا رو هم که الله سمد خداوند بینیاز است و ما هر روز میخوانیم. قرح الله احد الله سمد در زبانت حمد گویا در دلت پیدا سنم عیب و باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ در زبانات هم نگی یا گانه که نبینه ام تزبیه داشت می‌ده بازم یا خو یک فکایی بردان بگویم من تزبیه من داشتم یا یک فکایی برد بگویم مالشش این در زبانات هم گویا در دل تا است یا مثلا پشت تزبیه دست تلویزیون سال دب چی خوب خواندند سالال سفهانالله سفهانالله امی در زبانات هم گویا در دلت پیدا سنم عیب آبادن کافر رو ظاهر مسلمانی چیسی و چی فایده میکنه؟ این خسیل فایدن وقتی که ما میکنم قلوبه الله و حد. الله سمد خداوند سمد است سمدیتی خداوند یعنی چی؟ یعنی بینیاز است امروز ما حتی در بین این مشکل احساس میکنیم مثلا ما شما میبینیم که یک پاچه هست یک رایس جمعور است یک رهبر است. ما میخوایم پیش از پاچه ها برم میگه صاحب پیشه پاشا، او که میریاوال برو پیش دفترش از بادیگاردش باید اجازه بگیری، از رئیس دفترش اجازه بگیری، از سکاطرش اجازه بگیری، باز پیش پاشا بری. اگر از طریق وزیرش، از طریق در... رئیس دفترش، از طریق سکاطرش، از طریق تماس، در... یارا واسطه نسازی، خود به پاشا نزدیک نسازی، به از خود نسازی نمیتونی شدی. م... میره پیش، میفته در ورده پاشا، سکاطر ساعت میگم چی میگی؟ والا صرف ما می توخت گرفتی؟ اجازه گرفتی؟ نمیدید وقت اینال وقتی که خدا قریب میسازی با پاچاک من برم که از پاچاک گپ بزنم باید از طریق کی بری؟ از طریق وزیرش بری از طریق سکرطرش بری از طریق رئیس دفتر بری از طریق بادیگارد بری اینال کسی که خدا را نشناخته خدا را مثل دگه پاچاها فکر میکنه میگه ولی من روی سیاستم شرمنده هستم بیچار هستم غریب هستم مشرکی نمیگفن میگفتن تا که من از طریق واسطه پیش فلانی نفرمیرم که او رویدار است رویدار چی مانا؟ یعنی وزیر خداست یعنی سکرتر خداست یعنی رئیس دفتر خداست یعنی بادیگارد خداست خدا خب میگه الله سمت خداوند بینیاز است پس به این سکرتر که تو جور کردی این رئیس دفتری که تو جور کردی به این خداوند نیاز نداره خداوند نیاز است. نداره ازا سألک عبادی عنی، وقتی که بنده های از مپرسان بکنن درباری مپرسان بکنن فا اینی قریب ما بندی خود بسیار نزدیک استم وقتی که ببنده خود خداوند من نزدیک است از ولی خداوند پیش بلانی میرم چرا میگه ولی این مثل مادر وارم مهربان است خداوند از هفتاد مادر یعنی از میلیاردها مادر کدام مهربانی خداوند زیادتر است آیا بین خود و بین مادر کدام واسطه میبریم؟ پیش مادر کدام مشکل داشته باشی؟ میرونیم زن همسایی رو میرم تو بیاد خالجان که من بسیار رویسیا و شرمنده استم اما مادر رو برش واسطه شد اینش یک کاری انسان پس خداوند مهربانیش تو میگه بسم الله الرحمن الرحیم پس وقتی که خداوند رحمان الرحیم رحیم است رحمان و بودن خداوند چی مانه یعنی که از مادر و از پدر و از فامیل و از همه چیز کرده به من مهربان تر است و از بادیگارد و از همه چیز خداوند الله الصمد بی‌نیاز است از این خاطر من مستقیما نصف شو از و 12 رج شو از خواب نامه نمیدم که در ورودی مالی سمت حق دکم مالی است سلام عليكم مالی آدمی یه گناه کردن دوازده بیش میخوایم خب تو بکنم ای خدا در در مسیحیت که باید پسی پاپ بروی و بازو پا گناهی تو را که مطرح کرکات خدا در اسلامی قسمی نیست باید اول خدا را بشناسیم دوازده بیش اومه خیز اوزوکو خدا در ورودی را باز تکو با خداوندی آزبکو خداوند میکه از سالک عبادی عنی از سالک عبادی هنی فر اینی قریب ما با من خود نزدیک هستم علامه شاید تو شا. وقت شده با مسئولیت وقت دستان بگم مسئولیت خنده میکنه ما ربتم شاید تو وقت شده که شما ببینید که کل کلون رو تا در جنت استاد ما بیچاره او رو در پل سرات بند مانده بسیاری وقت هم تو میشه مسئولیت کسی که زیادتر میفا مسئولیت زیادتر است تو که عالم هستی تراخ مرامات عالم نیستی وقتی که عالم هستی مسئولیت تو نسبت به مسئولیت کل مردم بیشتر است. زیادتر است. چرا؟ چرا وقتی که تو میفهمی اگر بینی که و چا هست اگر خاموش بنشینی گناه هست تو میفهمی که این که فلم این در میکنه به که اینکه بگوییشی ای قسم تو اكو آله فعلا در افغانستان در سایه داشت که کوئی قسم میکنن این راست کجای یاد گرفتند مسلمان خودی قسم دعا میکنن این راست مشه با تا یاد گرفتند خب این طفلاکس سبا نه دیگه سبا میشه و تو خودت چوب گرفتی و به مردم عقیده اسلامی رو تشریح نمیکنی اگر خاموش بنشینی گناه هست یکی دالنس برادر عزیز و یکی مدل انسان سواد اگر گناه میکنه، ایدوال است. گمراهه، خودش گمراه میشه. خودش ملامت است. اما انسان باسواد، انسان عالم، انسان دانشمند، انسان فامیده، انسان دوازسر پاس وقتی که گناه میکنه، بازی مدل گفته میشه. باز این گمراه کننده است. خودش هم گمراه میشه و دیگرا را هم گمراه میکنن خب ارتباط دیگه ما وقتی که ما با خداوند ارتباط خدا قایم میکنیم با تقوی ارتباط با خداوند قایم میشه و اشناب از گناه ها سهومش با شناخت حقوق خداوند باید ما حق خدا را بالای خود بفامیم که ما در مقابل خداوند چی مسئولیت دارم منعی یک مسلمان اینجا ارتباط ما با خداوند زیاد میشه خب دوم قسم گفتیم که ارتباط انسان با خود انسان در اسلام برادرای محترم اول خودسازی ما مشکل اساسی ما ایست که ما خود نساختیم وقتی که خود نساختیم ما اسلام و بردگرها تمثیل درست کرده نمیتانیم یک نفر ببینی بسیار بسیار دیندار است لکن رابطی از این دیندار با او برادر برادرش بسیار زشت است چون وقتی که این نماز میخونا و نفل خوانده میره میره میره میره یا نان تیار است پیغمه اسلامیه که وقتی که نان تیار شد <تصفيق> لا وقتی که حضرت تاام آمد، <تصفيق> باز این چه باید نماز نیست که تو نفل خوانده بریم این نفل خوانده میره و اون میگه برای نان یخ شد نه تو باش مکبیس رو کارد یک پانزهر رو نفل دیگه ما مانده میره خلاص کنم این اسلام رو نفع میده، خاطر رابطهش در بین خانه چیست؟ خراب است موشو مو واخت که محمدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین خانه خود بوتای خود خود خودش میدوخت تو کش کنده میشد خودش میدوخت لباسش جو کنده میشد خودش میدوخت بیچاره این وقت خانه را جارو میکرد ما اسلام میسید وقت نفهمیدیم وقتی که خودمان نفهمیدیم درست تمثیل نکردیم وقتی که برای یک مرد مسلمان باید که در خانه داخل میشی خانمت اصلا و اصلا مادرت است السلام علیکم بگو آلمخه پایایشانم ماچ کنم یک روز یک کس راه گفتم من خییوسالم بخیزم پایای خونه میخوام ماچ کنم گفتم نه ای اسلام اسلام خورد نه, نه پایایش ماچ کو و نه تحقیرش کو حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله به صحابی مبارک گفت که وقتی که در دا داخل میشیدی سلام بده به خاطر چی به خاطر که سلام برکت است برای تو و بر اعضای فامیل این کس که در خانه هست خواهرت باشه مادرت باشه خانمت باشه بر سلام بده. این حالا وقتی که ما اسلام رو درست نفهمیدیم خدا نساخته از این خاطر در بین فامیل انسان متدین وقتی که گپ میزنن، چون ما خدا نساختیم دیگران به اساس نساختن خود ما یک انسان است مثلا ببین میوه دو قسم خراب میشه میوه دو قسم خراب میشه و انسان مسلمان مثل سه وارث میوه وارث این هم دو قسم خراب میشه میوه یا از داخل کر میزنشن بیرون سلمی گن سبب بسیار نازنین و خوب شخص وقتی که میری داخل خانه که توتش میکنی گند است از داخل گنده شده وای که از بیرون گنده شده که میخوردیشه انسان مسلمان هم اینه میقسم دو قسم خراب میشه یا از داخل خراب میشه وقتی که به نماز جماعت آمدی شیطان مثل اینه میقسم که در سی چیست؟ کرمک است آمد این کرم اسے ای و از داخل خراب کرد شیطان مثل کرمک ورا دا داخلت میایه خرابت میکنه برایت میگه اوه تو که به جمعهات تو بسیار خوب آدم استی. تو که نماز خوندی از دیگر که تو بسیار عالی تر استی. تو که مثلا در تحصیلات مثلا در امتیار نتایج پانتون در پانزه بسیار لکس کامیاب شدی تو نسبت به دیگر بسیار برتریت داری اوه اوه سعی تو تا چی خوب پانزه کامیاب شدی او دیگر سعی که در پانزه کامیاب شدن یا چانس داشت یا نه کامیاب نشد. تو که مثلا روزه گرفتی و فلانی نگرفت تو آمد روزشی من درست خوندی نسبت به اون دیگه که تو خوبتر هستی اینجا شیطان انسان از داخل چی میکنه کدیمی میکنش وقتی که در دا داخلت کرم پیدا شد گندش بدی. خوب چرای اوزایی دارم بسیار خوب زیبا هست خوب لونگی والا بسیار خوب دارم خوب ریشمام خوب هست خوب پتوگه که با جور خوب فلانیست فلان اینجا ای را آجب میگن چی میگن؟ آجب از خود راضی بودن است این آجب خود انسان چی هستن؟ اینجا باز میگه علم اگر در سر زند ماری شود باز اینجا درسی ازی، تعلیم ازی، علم ازی، نماز ازی، عبادت ازی چی میگرده, مار میگرده. ب ایوس فایده زرر بر می پیدا میکنن علم اگر در دل زنهتار شود خوب خدا اگر من اینجا کامیاب شوم شکرت از خدایا من بسیار را چیز قبلم لاکین توفیق تو بود خدایا شکر که من توفیق دادی که فلانی نفر اگر نخوان شاید او از مکلا بهترتر باشد. باشه خدا میدونه که نماز من خدام قبول شد یا نشد خدا میدونه که عبادت من خدا قبول میکنه یا نمیکنه از این خاطر انسان قلب جربیر چی باشه خوف و رجا می باشه میترسد از عدالت خداوند و امید دست برحمت خداوند حضرت عمر رضی الله تعالی هم میگفت که اگر در روز قیامت صدا شود اگر در روز قیامت صدا شود عزت و مردلتالونه چی میگرد؟ اگر در روز قیامت صدا شود که کل مردم جنتیس مگر یک نفر میگم همه ترسم که اون یک نفر منه باشد سکر عزت و مردلتالونه و اگر در روز قیامت صدا شود که کل مردم دو زخیست. مگر یک نفر جنتی است میگم معبیت میکنم عمو جنتی ما باشم یعنی خوف ترس از خداوند و امید به رحمت خداوند متعال جل الله داشته اینجاست که انسان مسلمان خودسازی میکنه وقتی که انسان خودسازی میکنه احترام باید اول خود انسان بر خود انسان احترام بکنه. و من لا يتق الشتم یک شاعر جاهلی و یا حکیم میگن عز وهیر ابن ابی سلمہ میگن این شاعر جاهلی بود درسته؟ جا. لکن حکمت داشت، شاعرای حکمت داشت. او میگه و من لا یتق الشتم کسی که زبان خوده از دشنام دادن وقای نمیکنه، حتما خودش دشنام میخورن اگر ده دفعه اولادت دشنام دادی، یازدهم دفعه چی میشه؟ اولادت خودت دشنام میتند. کسی که خودش احترام خود نکرد زبان خود از دشنام و قاینه نکرد، وقتی که استاد برای شاگرد خود 10 دفعه دعوا زد، دفعه‌ی 10 شاگردش اتمن یک دشنام میتشه. از خاطر انسان باید وقتی که رابطه‌ی خود با خود درست بسازه، یعنی خودش کار نکنه که سبب دشنام شه. عزت پیغمبر صلی الله و علیه و سلام میگه که خداوند رحم کنه بالای شخصی که مردم از غیبت خود بقایمیکنه یعنی کار نمیکنه که مردم غیبتشو بکنن چرا غیبت از کجا پیدا میشن غیبت از چی پیدا میشه غیبت از بدبینی پیدا میشه اگر تو کار بد نکنی که مردم تو رو بد نبینن چرا غیبتی تو رو بکنن به از غیبت انسان باید چی کنه خودداری بکنه ده تنهای از خود شرم داشتن انسان وقتی که رابطه خود با خود محکم میکنه حتی شخصیت انسان وقتی که عالی شد شخصیت بلند که پیدا کرد وقتی که شخصیت داشتی خودت از خود میشرمی از این خاطر ایره باز نفس تا در قرآن از شون چی گفته؟ یا ای ای ای نفس لوامه گفته نفس لوامه چی هست؟ نفس لوامه او ایست که اگر انسان مرتکب بیا گناه میشه خود نفس انسان انسانو چی میکنه؟ ملامت میکنن ولی توی کار خراب کردی؟ چرای کار کردی؟ مثلا وقتی که سینما رفت پس متاثر میشه که اوه اوه. والا 2 ساعت وقت ما وقتم را کردم، چیزی فایده داشتی، ناقصال کردم، چیزی و روز خودت تیر کردم، چیزی، پس خودش خودشه خودش ملامت. والله امروز روزم کلش تیر کردم، نقی از امی صبح تا بشام چیزی دستاورد داشت؟ وقتی هدف نداشت، دیگر خود میشه که والله من کل روز میم، یع، مهم، من 2 ماه از مستن مثلا مرخصی داشتم، در پامتونم هم درس نبود، در مکتبم نبود، رخصت بود، ای, ای تمام روز از صبح تا بشام تیر کردم، هیچ دستاوردی ندارم، خودش نفس از داخل ملامتش میکنه. از خاطر بر خود تقسیم اوقات جور میکنه که من از رخصتی ها چی استفاده بکنم به در درس تفسیر اشتراک و به تقسیم اوقات در کتابخانه بر خود جور کنم به مثلا مطالعه بر خود جور کنم به خلانی کتابا رو مطالعه کنم بیا خلانی سی دی ها رو ببینم حداقل اگر انسان بتونه روزانه دو سی سی دی اسلامی رو ببینه بی در دو باب قران عالم است پیش جور میشه اصحاب که قلمی نشسته داشتن که مثلا کتاب بود و مکتب بود سن میرفتن تا صحبت های پیغمبر صلی الله علیه و علیه از اونجا علم درس یاد میگیرفتن خب قسم سیومش این ارتباط است با جامعه اسلام انسان رابطه می با خدا، با خود انسان و قسم سیومش با جامعه با جامعه چه قسم است؟ انسان باید با اعضای فامیل خود ارتباطی بسیار مستحکم داشته باشه وقتی که نفل ثواب داره رضایت پدر و مادر درد بساری آیات قرآن اگر شما مطالع بکنید انشکر لی ولی والده اید قرآن که خداوند مطالبه اید که شکر مرا را بیار و شکر مادر پدر را با شکر خود یک جایی ذکر کرده که اگر تو تشکری از مادر و پدرت بکنی در حقیقت شکر خدا را انجام دادی پدر اگر تو نمی بودی من درس نمی خواندم پدر اگر من به بیصوی رسیدم از خیرات توست پدر از خاطر تو است که من بسیاری وقتها انسان در آخر الزمان است انسان مبتلا می شود به پدری که احیانا خدا ناخواست زالم باشد احیانا کم فکر میباشد احیانا حق انسان را میخورد احیانا مسائل فکرش نمی رسن. پس انسان مسلمان اینا می ره. چی فکر کرده؟ یک نه امتحان فکر کرده باز هم موخفت له ما جنا حصل باز پدر و مادر خود سر تسلیمی پایین می کنن ببینم پیش پیغمبر صلی یک نفر آمد دید که پیغمبر صلی الله علیه و آله از حضرت امام حسن و حسین میکنن می گفت یا رسول خدا یا را سر زامیت میشونی و یا را بوسه می کنی و احترام می کنی ما ده تا طفل دارم تا بال یک ماش نکردین گفت. من چی کنم با کسی که از قلب از رحمت خداوند گرفته شده باش. تو رحمت نداری بسیاری پدرها هست وقتی که در داخل, داخل شد و که اسرائیل داخل شد با اخلاق بچش است پیشش بچه جوانش، جوارش از داخل که باید برای زورش خود داشته باشن بچه خود مثل دوست خود فکر بکنه که از اون مشوره بکنه سویر بزن، بزن. ده بزنه اورا ده بزنه وقتی که نمیخواد داخل میشه یک دفعه سر می‌گید نمیخوام سکوت بچه از صبح از دروازه میگروزه او از او طرف اون طرف میگروزه پدر مسلمان باید اخلاق پیغمبری رو در بین خانه خود مراعات بکنه با فامیل خود با اولادای خود مثل دوست زندگی بکنه ایش ازداد اومر دلتانه او ازداد اومر دلتانه یک یعنی طفل نوازش میداد یک کسی را میخواست والی بسازن اون والی را که خواست برادر تو را میخوایم که والی فلانی منطقه فلانی و لاحق دید که ازداد اومر سیم خلال برادر که تفلک سرش مید گفت والا یا امیر المؤمن تو چقدر تفل نوازش ردی؟ من باشم چند تا طفل دارم ایچ خوشبنامه گیر نوازی بود. الا الا از تو من نمی تومرمو عم فرمانش از زیر بتید چریپا کشید گفت برو بخیر برو برو بر. چرا گفت تو والی شده نمیتونی تو که سر اولادای خود رحم و شفقت نداری سر ملت چی رحم داشتی تو خ... تو تو رحمت ندید از خاطر منفقهش کرد برو بخیر برو برو برو بر بر. ازم یک کلمه کافیت فهمیدن شد گفت تو رحمت تا قلبت نیست خاطر انسان مسلمان باید پدر و مادر و پدر کلان اینا باید بسیار شفقت داشته باشن اگر اولاد خود به نماز دعوت میکنند باید به با اخلاقی او را دعوت بکنند که طفلش خوش خوشا و به نماز بخونه بعضی پدرها هستند به زور سر اولاده خود نماز میخونند روزی که پدرش میماری رفته باشه یک تفلش به نماز نمیخونه میگه شوکرم روز از نماز بیغمهست اما پدر پدر, پدر پدر پدر مسلمان اولاد خود با قناعت بعضی خانمه رو حتی که شوارش خوب مبلبی و فامیده بوده خوب سرش چادر کلان میپشن یک روز دیده مشه گفت شوارت نمیره داروسته گفت نه نه او ده گفت دخاره شما داروسته او سپر تو چادر گفت او سپر تو بخیص دایره بزاره که ما برخصم چرا؟ خاطر ازی که از از ترس از او چادر استارسه از اسومیه از پوشید. پس ما باید برای خانم های خود بفهمانیم عزیز انشاء در پوشی در تو به خاطر عفتی تو بس خاطر پاکی تو به خاطر تکبر رو استبداد نباشه که اگر اگر اگر ای باشه او را عمل بکنه اگر نباشه نکنه بعضی بعضی حتی من واقعتا را میگم یک زنکه بود شوارش بسیار دیندار است روزمش قسم میگه گفتم ما بازی داده میشن خب چادر کلان میپوشیم چادرکه گاشم در بین دسکورن بس در میخانه یعنی می درآمد ما چادر گاشم میپرتون خودت و خانین سراخ داخل نمیشه این حاله باید انسان او قناعت بده نه از طریق که یعنی چهادر کلان پوشیدن باید خاطر مبو پوشیدن اگر نپوشیدین لطت میکنم باید لباس یعنی باید او قناعت بده که چهادر کلان سطر کردن لباس خوب پوشیدن این در حقیقت برای خودت فایده میکنن خودت انشاءالله در جنت بیری. خودت عزت پیدا میکنن ما در یک خانه بادم چند افرام تو جان داشتن. سرنمیک پران دراز بوی زنام پوشان زنا چند نفر یک گروپ شده بودن یک نفر خوب و حال حالمان بود او یک تره مانده بود بالاخره من رفتم در بین از زنا از خود ما بود وقتی گپو شروع کردن یک خانما گفتن که توستا کو سر ما خود فرام جور کنه هیچ نمیشیم خوب دامن خود کوتاه میگیریم خوب چادر می میپوشیم خب بالاخره من شیشم گفتم برش قاهره عزیز אבי مولای سقیس که معلومت است من قصه برتون میکنم منتظر دار شما هستم خوسیس چی قصه میگه من پیغمبر صلی الله وقتی که درگ وقت ملایکو را بردن در یک جای که یک تی د سنا از موی کشال هستند یک تا که از پستان کشال هستند به کہ پیغمبر ص وقتی برسان که برسان گفت یا کی هستند گفت این زنایی که از موی کشال هستند این زنایی هستند که مردای نامحرم موی اسنار دیدن و این زنایی که از پستان کشال هستند زنایی هستند طفلی خاشید میتا ایوانش میشه ششتا ششتا طفلی خاشید میتا و یا خان خدکلون جور میکنن که تا گزارا نمونن اعضای بدنش ماله میشه از این خاطر در روز قیامت این تو در چند در کشان اولا کلشان توبه کشید چادرها را چور کردن گفتن بادستی برا ما خیلی قسم نگفته بود انا رو ما باید اسلام به بشکل درستش بر مردم بفاهمانیم تا که بود چیز که کساست خودش بسیار خوب دیندار هست استاد است. نتانست که امرای استاد مسلمان است نتانست امرای شاگرد خود رابطی بسیار قوی و خوب داشته باشد او شاگردش فکر که استاد من دوست من است هر وقت مشکل خدا بگوید درد خدا جان در جنجار خدا بگوید مشکل خدا بگوید ای نتانستن از خدا خاطر تند از تند امین که درصال داخل شود شاگرد از ترس از اون گب زنن ولی باز دین هم نمیپنسید گپاش هم قبول نمی کنند گپاش سر هم نمی کنند از خاطر استاد مسلمان باید بسیار نرم باشو ما در حدیث شریف می که یا کاری زک آمد ازنی دوست پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر سم اون طرف میبود کشاد که دی پیغمبر خدا من تو کار دارم میم گفت کارو پیغمبر سم کش میم بونج باش می من مشکل دارم می مشکلای می دی مشکل دارم, دارم. پیغمبر سم ایقدر وقت میداد برای رعایت خود برای مسلمان ها مدیر مسلمان مدیر مسلمان وقتی که کار می دکتر سر باسم شاسمون مسلمان بو اون یک روز پرسان می دکتر تو چرا در شفخانه گفت من در شفخانه لونگی میرم کتر ریش میرم مسواکش دست هشت گفت چرا تو میکنی؟ گفت من خاطر ازی که وقتی که دکتر هستم میرم یک مریض سرش دست کشمه کنم برش دعوه خدمت میکنم این لونگی مردید، ریشی مردید، مسواک مردید، میگه ولی این مسلمان است این هم یک نو دعوت است این هم یک نو دعوت است باید ما او را در لباس خود او را دعوت کنیم اما اینکه مثلا خوب اما تو ظاهر ما آراسته باشد جمال الوجه و قبح النفس مع قبح النفوسه همانند این قبر المجوسه یعنی نفر که چهره بسیار خوب زیبا داره لكن از داخل بسیار تند است بد اخلاق است نفس خراب داره مثل که میگه سر قبر مجوسی مجوسان سابق سر قبر خود باز یگند دسمال بسیار زری لکس از سر قبرش من ها در بیرونش چه خوب دسمال لکس از زیرش داخل قبر میینه که جهنم است برگرفتن اینال انسان بداخلق اینمی قسم است از این خاطر انسان خداوند به پیغمبر سمیه که فب نعمت من الله لنتله هم ای پیغمبر خدا این نعمت خدا بود که تو نرم شدی عالم مثل اسلام باید بسیار نرم باشن هر کس بتانن مشکل خدا برش بگویه. هر کس بتونه براش درد دل بکنه راز خودو بگه و این مثل یک دکتر واره برای ازونا برای هر مرض هر مشکل اجتماعی اما اگر تون باشه برای یک نفر یک جوان مشکل داره میخواد پرسان بکنه که مثلا مشکل در غسل دارم دموی بارک رمضان یا کسب پیش شما من به و استاد من بر شما به خاطر از تلفن کردم که من تا بالا میترسم از 20 مولویس بپرسان کنم که یعنی دموی برک رمضان اگر انسان احتلامش و روزه داره یا نیست مهما مخیفتون برادار عزیز خیر است وقتی که در خواب بودی از اصول قلم برداشته شدن ایش روزیت هم نمشکنن خدا ولما ده باجه از خواب خیسم خیر است یاز ده باجه میخیسی لکر گوست در بکن بوزید میشد دین اسلام! چیزی که اسلام میگه خود پیغمبر هستی یا یسیر و آسونی کن بر مردم. ولا تو عسرو سختی نکر مردم که دین بر مردم بخی سخت بساز. بشیر مردم بشارت بتین! تو ان شاء جنتی هستی. تو ان خداوند تو عملت قبول میکنه. و قل عباد الذين اسرفو که این آیه شریفه بسیار کم تفسیر میکنیم، تشریح میکنیم. باید این آیه شریفه یک ساعت سرش ما شما یک کانفرنس بگیرم که قل عباد الذين اسرفو على انفسهم لا تقنط من رحمت الله <تصفيق> خداوند متعال میگه بگو بر بنده های ما که اسراف کردند، زیاده روی کردند، اشتباه کردند، گناه کردند، به راه خود لا تقنطوا بر رحمت الله از رحمت خداوند متعال شما نامید نشین این الله یخ زنوب جمعی خداوند تمام گناه ها را میبخشه هر ار وقتی که به طرف خداوند رجوع بکنی دروازه دروازه رحمت خداوند برای باز است. اینمی که تو گناه کردی کردی کردی کردی کردی و تا امیال نماز نمیخانی تا امیال روز نمی گیری تا امیال زکات نمی تی و خداوند اون لحظه مثل فرعون و رطرق خرق نکرده خداوند بارش بالایی مهربان است. وقت می تید. امی که خداوند برات وقت داده در آلتی گناه طرح غذاب خدا صرفنظر زل نکرد از رحمت خداوند است از این خاطر از رحمت خداوند استفاده کن پس رجوع کن خداوند بر انسان وقت میده تا چی وقت تا که ازریل علیه السلام ندیدی تا چی وقت تا که آفتاب از مغرب نبره بده وقت در پس وقتی وقت خداوند بر ما دادن باید برای بنده های خداوند تشکر کنیم و بپرش بگیم که خیر است اگر نماز خوانی باید شروع کنم هاسته بخوان رحمت خداوند بسیار وسیع است خیر است که 10 دا دا سال روزه نگرفتید، بهتر است روزه بگیرید. خیر است که فکران داشتید خراب بود، خیر است که کمونیست را بازی داد، تو را خیر است که سوسیالیست را بازی داد، تو را درفت دفعه که پشت سوسیالستان. خیر است که مثلا تو را سیکولاریس بازی داد، تو عقیدت خراب ساخت. بودی توبه کو، بودی اندیشکت جور کو، بودی اسلام پس بدروار خداوند رجوع کن چون رحمت خداوند بسیار بزرگ است و وسیع است. هر وقتی که به دربار خداوند رجوع کنی، خداوند رد نمی‌کند. ببین پیغمبر صلی الله علیه و دشمن فامیل کی بود؟ وحشی بود کاکای كا... كا... كا... پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتو کشتن عطا قلب بارا کرد که اتا قلبش هم پاره کرد کجی جیگر قلبش هم لیکن وقت که آمد که مسلمان شد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسر چی شد مسلم تو قبول است ما کتاب خاطر شخص خودش می نامه کنم. ما مثلا چرا یک کامورس بدم امّا چرا یک بیدین بدم امّا نه، با خاطر شخصش که او فلانی قوارش یا قلب بلند است یا پایین است فلان است. با خاطر از اینکه فکر آن دشکش بدم امّا من؟ پس درای در خداوند به و توبه بکنن و برای اسلام و به عدالت الهی و به انسانیت پس بگردن از از از قلبمون که برامان زیگتر است، او دوست می داشته باشیم. چون مسلمان کسره. به خاطر چیز نمیان. بیشتری کس ها خوب مسلمان است رابطه بسیار ضعیف با فامیل خود دارن اعضای فامیلش خاطر از او از دین متنفر هستن حالا اگر تو عالم باشی و تو نمازخان باشی و با یه اخلاقی که تو داری مرد دید. آدم مسلمان باید سنت پیغمبره مراعات بکنه اگر امشیرش کالاشوی میکرد این باید زرفوابشش بیارد اگر خانمش دیک پختم میگه، این قرار بسازن. وقتی که پرسانش می کرد بگویه که چیستم؟ یک روز من مثلا سی چهار نتبه خانم بگرفت من می توکمیم بدوز بدوز یادش رفته بود، نه دخته بود، نه دخته بود خب من گرفتون من می توکمیره خودم سوزن نگرفتم دخته می رفتم منتحه کمکی پیشانوی من دوش گرفتم خانم من میفهمید، بر بگو من اگه فعال خیلیست که یک سر نتبه یکم برا تدبیر کردی چرا قار خود پیغمبر از را خود میگی، خوتم بیکش کرد این پیش روی باز که تا دیدم مگه این پیش خدا خوازم میگردم. تو چرا بچه بخفرید تو با خدا راستی ولی من اشتباه کردم. باید تو خانم مسلمان، خواهر مسلمان، برادر مسلمان، بفهم که ایتلاف. آیت تو در دین مقدس اسلام بسیاری که سا ما ولی مسلمان استم و نیمان خدا در کسیش نیستم. با برادر خدا در نیستم. تو که مسلمان هستی نه فقط با اندوزی سر تو فرض است. خود مسلمان هستی میتونی یک کلو گوشت بخری بر فامیلت نه ولی من نمیخوانه یک ماست کچالو میبرم خود تو خونفقی فریسی سر فامیلت بخیلی کردی میتونی سید بر فامیلت ببری خونفقه با... وسط میرسه که یک کیلو سید <تصفح> یک چهارک سی پنجوار به بخری تو نامه خری نه والا من یک ماسک هش چرا من والا مسلمان هستم ترک دنیا کنم تو ترک دین کردی اینو ترک دنیا نیست این ترک ترک دین است چون پیغمبر صلی الله علیه و فامیلتون به اندازه‌ای چی هستن به اندازه‌ی توانایی هست تو توانایی داری برازن اما به پولوزی باید وقتی که برای اولاد خود خریدی باید ببینید که اور انسای هم والا بیچاره میوانا داره باز اون وقت مسلمان کامل میشه که اگر یک چهارک بر خود خریدی خرید نیم نمیدیم او امسایی به او غریب و مسکین هم بخار اگر خود هر روز در محتر میدوانی و موتر میری خب محترم سر تو فرض است دیدی که امسایی مریض است مقرار خوب مثل ما نمستم خوب اونم محترم هم مجیستار است او شش نفر یک, ز... یک مریض پرش کردن تو مریص نما مقدار 80 کیلو اس اور تا میکران از, از میبرند وقت و قرارش اینجا اجباض خب دینم من ما معلومات شدم اسلام ما کامل نشد به خاطر ازی کی اجهاک می خداوند است که من مادر من در خدمت از اون مریض قرار بت تا من مسلمان حقیقی شوم اینجاست کی باز مردم وقتی میهوال اینی اسلام است بسیاری کسات یک روز یک اپ اچاد منامیره یکی از اصحاب ما بسیار با تقوا انسان بودی کی 24 سال می خداوند و به عبادت خداوند مشغول بود یک کسی از پیش از خفه بود من رفتم پیش اون نفر گفتم که بیاده فهم هفتم سعی که امی شیخ چخ بودام هست حافظ قران هم است و بسیار دیندار ام هست و همیشه در ذکر یاد خداوند است نمیشه که تو از پیشش خفاستی که چی گفتم گفتم ما در ارتباط خدازی با خدا مشکل ندارم من انتقادم سرش ارتباطش با من هست با خدا خوب ارتباط داره خوب به خدا نفل میخونه خوب به خداوند ذکر میکنه خوب قرآن میخونه خوب سین میکنه ارتباطش که تا خراب است این رجال که شبو جنگ میکنه، مقال میکنه، پس خدا خو گفته که هم ارتباط تا با خدا جور هم ارتباط تا با مخلوق خداونجور کو. از این خاطر آدم مسلمان باید ارتباطش با خداوند متعال بسیار قوی باشه و با مردم بسیار قوی باشه تا مردم از دیدن از او بسیاری وقتها چون ما مسلمان ها اسلام درست تمسیل نکردیم، درست بر مردم نفهمیدیم، یک نفر کافر میگه، میگه به خدا من مسلمان شدم. لیکن شکر خدا را کردم در چی شکر کردی؟ میگه خدا را شکر کردم که پیش از اینکه من مسلمان را ببینم مسلمان شدم اگه مسلمان را میدون بایی به اخلاقی که ندارن من هیچ اسلام قبول نمیکردم آیه این ای عیب نیست؟ بیشتر عیب است که مثلا من منعیس یک امام هستم خاطر ما پای نفر در مزید در نماز نبیائیم ولی همین ملاصر ما بسیار بد اخلاق است بسیار تند است یک مسئله پرساندش کنی کات چبلق ده کلیت میزنه از این خاطر من نمیرم مسجد پس میشه ما گنا گناکار شدم مانعی یک نفر مسلمان دو آمدن در مسجد شدم مریض صفه هستم در مسجد میرمک بعض از ریش صفه ادات دارن که مجرد دید که یک جوان ما یک وقت یک جوون به چهار و بسیار سختی آوردن که نماز بخوانن یا اومد در مسجد که نماز بخوانن سر نماز میخوان سلفی ما بودن خب گفتم خیره صارسه که داخل مسجد داره مصابه ریش صفه ده جان از او کافر او بی دین او گمراه سرلوش نماز میشن او بچه در روز که از مجد گریختان دیگه هیچ نو آمد در مسجد در حال که او برادر گل اگر نماز سرلوش نشن خی امیحاجی که در اطراف کعبه دواده که احرام بسته میکنن کلش سرلوش نماز میخوانن نماز ازیان نشده. او از تو چرا سج ناز ها شد حتی اددیسماد که بقی مثل سرار هم رو ناز خواندن اما ما بشون باید این قسم بایم که برادر اگر کلاهو بپوشی، اگر لونگی بپوشی، اگر لباس از بپوشی، پوشی از هااب کران عطر مگلدن لباس خوب میشن هرقدر خدا زیاتر با ادب در مقابل خداوند استاق چوی اعرض زیادتر میشه از ده۰ گرفته تا اف۲ ج زیاتر میشه. دیگه، مشکل دیگه یه است که با همسایه ها ارتباط خوب داشته باشن خب ارتباط با علوم و معارف بسیاری وقتها مسلمان باید در ارتباط که با جامعه داره با علم و معرفت باید ارتباطش محکم باشن و خدا اگر مسلمان ها از وسایل تکنولوژی و وسایل پیش رفتم استفاده مسبت می کردن آل دین مقدس اسلام کل مردم در اروپا و آمریکا محتاج است کل عید در وجود ماست ما طالب برای این مشکل است که آیا کامپیوتر کار کنیم؟ کامپیوتر حلال است یا حرام؟ اینترنت حلال است یا حرام؟ تلویزیون حلال است یا حرام؟ برادران گل. گلاس آب است. تلویزیون، اینترنت، کامپیوتر مثل چی ورز؟ گُلوس آب است. اگر در گلاس آب آب نوشیدی حلال است. اگر در گُلوس آب شراب نوشیدی حرام است. پس او وسیله به چاره ملامت نیست. اگر در کامپیوتر تفسیر قرآن ان ثابت کردی کتابورا ثابت کردی به علم بر معرفت با دانش که کس تای مثلا یک نفر در ت بس سی دی های کتابای تبیری در حقوق است کتابای قانونی را خوان در شریات است احادیث و تفاصیل و از یا استفاده کرد، پس اینجا کامپیوتر بهترین وسیله است اما اگر یک نفر در کامپیوترش کل پسکارت های ایندی و کلش فال و کلش خوانناسه کلش تصاویری غلط است چه بر حرام میشه اگر در اینترنت رفت اونجا تقریبا 250 سایت عمل من پیش خود تا گه کامپیوتر 250-260 سایت اینترنتی است که محصولی 15 سایت بر ما ترتیب کردن و آوردن سایت های اسلامی اگر باز کنی ازی استفاده بکنی بهترین کار خوب است تفاصيل مهمی را که من در بازار یافت کردن نمیتونیم وقتی که میریم در اینترنت این تفاصیل هست پس ازو استفاده کردی مثبت است استفاده منفی کردی آله مثلا تلویزیون اگر درس تفسیر قرآن حدیث شریف این شود خوب است و اگر خواندن و ساز و رقص و نشر فیلمای ایندی و مردم عمره کنه این چه راهی هست پس ما باید از وسایل اله آل مشکل ما است که غیر مسلمان ها از طریق این وسایل ضد اسلام کار میگیرن پم ب ازا تیک نشر میکنم فیلم های غلط ح میترینیم نشر یک نش عدا فیلم و آدم و هووار اینه میلدن پیش فروشگاه برین فیلم حضرت و آدم و هوا جور شده و او هم ساختن با مس ما مووع می این عقیدش بسیار اک از اون غلط میگیره حضرت ابراهیم علیه السلام بیشتر خراب نشان میده خراب نشان میده حضرت آدم علیه السلام یا رو بدون میده بیبی رو شوه. بسیاری مسلمان ها هست در لباس خود حدیث شریف است ان الله خداوند متعال زیباش یحب الجمال جمال زیبایی ایر خوش داره یک نفر رو که کالای خشر کونه خراب از او که خشر نباشه او رو نمیپوشه چی کپ من مسلمان هستم خداوند خوش داره که آثار نعمت خدا در وجود یک انسان ببینه لکن مشکل لباس دهی است که اگر لباس خوب میپوشی ولی تو در لباس پوشیدن لباس خوب اگر غرور کنین باز اینجا لباس خراب میشن تاغرض یک انسان، یک انسان لباس خوب میپوشن اگر لباس اسلامی لونگی و لتن تنبون لباس خوب میپوشی بسیار خوب است اگر مثلا لباس دگی میپوشید لباس خوبتر میشد کوشش کو لباس اسلامی رو با چلی بسیار زیبا و خوب و پاک بپوشی متاسفانه بعضی قصص ولی ما دنیا کردن میشه لباس نمیپوشون یا بیکیر تو لباس میپوشه که معلوم میشه و خودت که استفاده از واسایل تحقیق از علم و معارف آلموشن ما اگر علوم ببینید در سیاست اسلامی هر علم فرض کفایت، هر علم فرض کفایت. انجینری فرض کفایی است <تصفح> در کل شش جمله فرایس ما اگر هیچ کس ده اونجا تربیت نشه در انجینری در حقوق در طب در ژورنالیسم در کامپیوتر در ایگاپا کله گوناگر میشن اما اگر ما یک تعداد مردم تعیین کرده که شما برین تحصیل کنین و این مجال کار بکنین باز از کردن دیگه مردم ساقط میشه. پس اینه باید اسلام ما شما بفهمین وقتی که آیه قرآن اگی فسلو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون. شما برین از متخصصین پرسان بکرید ولی یک نفر که میگه والا زنوی دنس نخونه هیچ مکتب نخوا هیچ پنتون نخوانن خب اگر خانمی اینمی نفر مریض شد و بعد دکتر زاد نیاز نیاز پیدا کرد خب در اسلام نمیگه باید در قاعده اسلامی است که انسان باید وقتی که خانمش مریض میشه اول پیش دکتر خانم ببرشن وقتی که دست نخونه خای دکتر خانم از کجا پیدا میشه پس ما باید بر از اونها زمینی دست خوندن اسلامی شد آماده بسازیم نه به سیستم سیکولاری که باید زن مرد گد ود باشه و کلشان با دکترها آرایش های رنگارنگ بده ایره هم اسلام نمیپذیرند و ایره هم اسلام نمیپذیرند بیتی اون دکتر زن نداشته باشیم، معلم زن نداشته باشیم، حافظ قرآن زن نداشته باشیم، اون چیزا زن پیغمبران بی بی عایشه بی بی حفصه اردشون حافظای قرآن بودند. و در جمله علمای حدیث بزرگترین عالم حدیث بی بی عایشه رضی الله تعالی که نفر چهارم از در بین بزرگترین که کبار صحابه وقتی که مشکلی پیدا می‌کردن، می آمدن پیش بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها و ازش ازو فتوای می‌خواستند بسیاری مسائل احکام اسلام می‌کردند. پس ما و شما باید دین مقدس اسلام را به کامل و دروس ازو بشناسیم و دروس تفصیل بکنیم و کسانی که در درس‌ها اشراق می‌کنند ما شما باید در فامیل ما آنقدر خدمتگار فامیل خود باشیم که دیگر فامیل ما احساس بکنن که در سایه اسلامی واقعاً اسلام یک دین خوب است ما شما باید به پدر و مادر خود نسبت به تمام اعضای فامیل خود وقتت له ما جنا حفظ بسیار بشور خود خلق خدا دلیل بسازیم بر مادر و پدر بسیار احترام زیادشانه بکونیم تا که دیگران بفهمند که واقعاً ما مسلمان هستیم ما را تاس با حتی بالشمندان پشت میمان بغمه سلام میگه وقتی که یک مسلمان برای میمان خود بالش در پشتش میمانه دینمی هم ثواب و عجد و صدقه هست پس باید بر میمون خود هم احترام زیاد بکنیم تا که او که با مسلمان هستیم خداوند مطال جل جل شما توفیق عمل نیک نصیب بکنم الحمدلله علی دین الاسلام الاسلام حق و الكفر الحمد الحمدلله الازی جعلنا من امت محمد صلی الله علیه وس ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفل لنا وترحمنا لهنکونن من الخاصرین پروردگارا ما در ای درس با یک تعداد است ریش سفیدان جوانا اطفال خود بزرگ از های مختلف از جاهای مختلف شار کابل و حتی بعضی برادرای ما از دودر امروز مهمان آمده تشریف دارند بعضی برادرهای ما از منطقهای بسیار دور اینجا آمدند به خاطر اینکه ای حدیثی بران صلی الله علیه و سلم شنیدیم که وقتی که چند نفر از مسلمان ها در یک جای در یک خانه خانه خدا در یک جای در یک منزل جمع میشن و اونجا یاد خداوند نمی ذکر خداوند نمی کردن طالب علم اسلامی را میکرن. اونجا ملائکه ها چرا اطراف از اینا را می پوشانند و رحمت خداوند نازل میشن پروردگارا تو رحمت به بالای ما نازل کن پروردگارا بر ما توفیق بیشتر نصیب کنی که در درس و در برنامه‌ای که به رضایت خودت هسته و اشتراک بکنیم خدایا ما را از جمله کسانی بگردانی که خادمای دینت هست خدایم ما را در روز قیامت در جمله خادمای حشر بکنی خادمای دینت حشر بکنی بر جمعه چهراسی های دیگه ما را خدای حشر بکنیم خدای که میکنیم ما را از ریا نگاه بکنیم خدای بر ما توفیق بیشتر نصیب بکنیم خدای پدر و مادر ما را مخیرت بکنیم خدای کشور ما افغانستان بیچاره در طول چندین سال مورد تجاوزی بسیار دشمن ها قرار گرفته و همیشه پلان های میشه خدایا خدای کسی که به اسلام و به ضد کلمه اسلام و به زند کلمه تو و به زید پیغمبرها و به زید اصحاب کرام و به مسلمان مسلمانها و به کشور ما پلان میسازن خدایا یا اونا را حدایت بکنی و اگر قابل حدایت نیست خدایا اونا را حلاب کنی الهی کسانی که آماده هستن که وطن ما را بفروشن اونمو نمو قسم رسوه کنی مثل که شکوسا و غلاما رسوه کردی خدایا کشور ما را آزاد بسازی آزاد بگردانی و در جمعه کشور های اسلام لا اله الا الله و محمد و رسول الله را و برق اسلام در کشور ما افراشتا بدنیم خدای تمام مریضه اسلام شفان شفا نسیب خدای مردم ما مردم بیچاره و آجز هستند خدای این مردم آجز و بیچاره ما را ها از بارگاه خود ریس و سحبشان و آفیت و آرامششان و نصیبشان بگرداریم خدا ما را هم تافیق بتی که در خدمت مردم خود و تن خود و ملت خود باشیم هر وعد کار را نخوستین که ما عزید دنیا میلیم به طرف آخرت و نخوستین روز ملاقات خودت است يرقص الفوار بقوا رزا لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لك على الش ابي وداد لي فندق لك الارض مدى من أطواذ شدأ أنت يا ملهم شعب أني برّوع اشتكم حطّل الشعبي مرّ لشعبي ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ليكن ليكن حبك للأرض بناء قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت وبنيت وبنيت المجد أطواها الشداء أنت يا ملهم شعب أن يمر وعشت كم حققت للشعب مرام للشعب مرام مرا. زيد الخراس سلعنه شمالا وجنوبا ونجودا وغيراما جامع الأشتاة أنتم داع ربنا تحب القوم جمعا لا فراء زايد الخراب سلعنه شمالا وجنوبا ونجودا وغهادا يا زايد جامع الأشتاة أنتم داع ربنا تحب القوم جمعا لا فراء